تاریخ هرگز به ما مردم لبخند نزده است، حتی در بهترین شرایط تهاجم از پی تهاجم، مرگ مصیبتبار از پی مرگ مصیبتبار. پیروزی های تاریخی بزرگترین دروغ های تاریخ هستند تاریخ دردشین است که از عشق پرهیز می کند. و همین هم باعث شده است که خشن، بیرحم، تلخ و خالی از احساس باشد. اثرگاه ایران باستان همین گونه است، عشق تاریخ بر نمی آنجا را مردم تصرف کردند، نسلاتین و حکام. گفتم که ما نباید مجسمه شویم، باید به مجسمه نگاه کنیم. اما تو چه کرده گیل مرد؟ زندگی من را در این برنامه هفتگیت به یک پیکره زیبای سنگی مبدل کرده ای نکردم نکردم من این کار را نکردم اصل من حتی حذف تصادف هم نکردم گیل مرد نقش از شدت درماندگی بود که صدایش را قدری بلند کرده بود من پیکره نساختم فقط طراحی کردم اصل از طراحی تا اجرا از امروز است تا کی؟ تو با هر پاک کنی می توانی بخشهای امدهی از این طرح را پاک کنی همیشه همیشه چرا اینطور طور برافروخته و بیتاب شده ای بانوی آزری من چرا من هنوز یک قدم هم به سوی سنگی کردن زندگی من بر نداشتم. من باد یک نفس اگر آن نفس در مجسمگی بگذرد من، من فقط ترهم را برایت خواندم. یک شبانه روز آن را خواندی. من سکوت کردم در تمامی این مدت که مثل یک عمر بد دراز بود من سکوت کردم من لبخند زدم چرا؟ چون آنچه ساخته ای قشنگ است یک قفس قشنگ اما چیزی است که به هر حال در درون یک چارچوب جای گرفته. به زبان تو که با این لجاج سال هاست موزه را اثرگاه میگویی به درد اثرگاه میخورد. ته تالار دوم، آن روبرو. در آن قاب بزرگ مجلل برای قرنها تو اما فراموش کردی سخن خودت را فراموش کردی که زمان از کنار انسان نمیگذرد انسان از کنار زمان میگذرد زمان چیزی بیش از یک قصه خاندنی یک پیکره سنگی دیدنی نیست حرکت محصول اراده است زمان بدون اراده بدون هدف بدون آرزو بدون تازگی بدون دیگرگونی های نامنتظر یک پیکره سنگی بیشتر نیست. نگاه کن پرده نقاشی تو در انتهای تالار دوم در آن قاب پرشکوه مانده است تا بپوسد. هزار سال بعد دو هزار سال بعد ده هزار سال اما انسان به گفته تو شرط انسان بودنش نپوسیدن است. و شرط نپوسیدنش از کنار زمان گذشتن، دریا بودن بدون برنامهای برای توفانهای در راه، اینها را من می‌گویم یا تو، گیل مرد مستعصل بود، مستعصل به اصل نگاه کردم و گفتم، امانم بده اصل، امانم بده بانو، من هنوز حرف دارم، هنوز، حرفی برای یک شنبه‌های همیشه یک شنبه یا سه شنبه‌های همیشه سه شنبه؟ هیچ کدام هیچ کدام حرفی حتی بر ضد روزهای مکرر گرفتن تکرار از آنچه که فی حد ذات مکرر است بانوی من زیبایی در نداشتن برنامه نیست تو میدانی خوب میدانی زیبایی در داشتن برنامه و تمرد گهگاهی از آن است زیبایی در نفس تمرد است اگر تو گلدان بلوری نداشته باشی که یک روز از آن خسته شوی تا به دورش بیندازی یا پنهانش کنی این راه خلاصی تو از خستگی های روزمره نیست گلدان بلوری باید تا پنهان کردنی ممکن شود و رهایی از تکراری من برای تو یک گلدان ساختم و تراشیدم یک گلدان سفال زیبا به شکلی نیم قدیمی نیم نو کمی مجرد کمی تزئینی، مختصری موضوعی ترکیبی نو بی پیشینه گلدانی که بعد از ما بسیاری از عاشقان مثلش را خواهند ساخت بر اساس رؤیاهای خود و آنگونه که دوست دارند به زندگی خود نگاه کنند نگاهش کن با آن زندگی کن دوستش بدار و دورش بینداز یا برای مدتی، مدتها پنهانش کن البته زمانی که از آن خسته شدی بانون تو مسئله منی نه گلدان سفال تو مخاطب منی بانو و مسئله من مخاطب است نه اثر اصل آرام گرفت و قدری شیرین شد اصل لبخند میزند گریه نکن گیل مرد کوچک اندام دلم را نسوزان اینطور مثل بچه ها بغز نکن چارچوب زمانی خوف انگیزه است که ناشکستنی باشد و من حس کردم که تو شیفته یه چارچوبت شده ای و استحکام آن اینطور عرق ریزان خاندن و خواندن اما من فقط نخواندم. ما زندگی کردیم تغییر دادیم رد شدیم شکستیم تو بی انصافی می کنی. ما رد نشدیم در جا زدیم اشتباه تو همین جاست مه مه مه مصنوعی آه خدایا تو بعد از سالها زمانی که مرا کاملا قانع کردی که مه مصنوعی مصیبت عزماست خودت گرفتار مه مصنوعی شدی تو فرصت دادی که اتوبوس از میان مه بگذرد میفهمی گیل مرد می فهمی؟ یک زن که میداند عاشقی دارد شاید تنها ع بشین باشد که به عاشق هیچ فرصتی نمیدهد. ما در مهرد نشدیم. ما رد شدن را در ذهن تجربه کردیم و یاد گرفتیم. حال ما رد میشویم. برنامه داران میدانند که در جا دویدن تمرین دویدن است در مکانی محدود. مگر تو در آن سلول چند وجبی نمیدویدی مگر پرواز نمی کردی، نه مه مصنوعی نه و حتی نه پناه بردن به سرزمینی که پیوسته مهالود است پناه سپر است عشق جنگی است عاشق آشق سپر انداخته می جنگد، این درسته است که من به زندگی که از آشفتگیش به جان آمده بودی نظمی ذهنی و زیبا بخشیدم. هرگز ما نگفتم که بر اطلاق تا آن باش. نظم زیباست. تنها در صورتی که بتوانی به گاه ضرورت، ضرورت حسی و عاطفی آشفته اش کنی. به هم بریزیش. ما مثل بچه ها. راست میگویی. مثل بچه ها خوب است که یک برنامه هفتگی داشته باشیم اما خوبیش در این است که بتوانیم هرگاه که می به هم بریزیمش این دیگر در نظام مدرسه ها نیست ما میتوانیم حق داریم، مجازیم که جای شنبه ها را با شنبه ها عوض کنیم و جای جمعه ها را با شمبه ها یک هفته اصلاً به مدرسه نرویم این خوب است که مدرسه باشد و نرویم این خوب نیست که مدرسه نباشد و ما ندانیم به کجا نرفته ایم.